کدام گناهان موجب عدم استجابت دعا می شود؟ تعداد گناهانی که موجب عدم استجابت میشه متعدده ولی یکی از مهمترینش عاق والدینه. عاق والدین بسیار موثری در بالا نرفتن دعا چه پدر مدر در حیات باشن چه به رحمت خدا رفته باشن باید انسان ازشون حلالیت به طلب عملا نه به قول و گفتار فقط دلشون خوش باشه از فرزندان یکی از موارد خیلی مهمه خدا حقی والده هم تعریف میکنه این ناراحت کردن او اونها یا بسید بالتر در قرآن داره که ولا تقل لهم افه. یه این اه هم اهم بشه یه اوف یعنی یه بی اعتنایی به ظاهر کم هم نه مکروه حرامه پدر و مادر هرچی که هستن ما وظیفه داریم نسبت بهشون و لازم هستش که در برخورد با اونها صبوری و خودنگهداری داشته باشیم اونها رو ناراحت نکنیم